داریم از آنها اداریم اشمعی اللهم از فرنا جمعی المشترین و رحمه و رحمه و شد بحث اشکیز جدی از مراد استعمالی رو از خردیم در این جهند رم مواردی این موقع آخری مسئلهی بود که استلاحاً اسمش رو استفتان بودشیم و اصلاً در کلمات و به عنوان ملازمات ما آمده خلاصه بحثی که دیروز اینجا رسید در نویز ملازمات حقیقی که به اصلاح های نویز مقدمی واجب در مسئله یه سر حق در مقامی از نوعی از دلالت لفظی و محدود لفظی وجود نداره و توضیحاتش رو تقریبات شیری بوزرش دیگه تکرار نکنیم پس اگر مثلا در همه مثال و گفت نام بخر به نحوه مدلول لحظی نیست که توش بازار برو که بگیم مراد جدی این که بازار برو توش نخواد هست در واقع در متن واقع هست ولی که و در ذهن خود مکلف هم میاد قارضتان هر تکلیفی که بشه به ذهنش میاد که مقدماتوش انجام برید لیکن این تطوره مدلول لحظی نیست اون بس مقدمه ای واجب همینه مراد جدی به همون مقداریست که ابراد شده اون مقداری که ابراد شده این این مراد است. اما رخصن بازار یا رکیان مقدمات جزبه مدول لحظی و مدولی که به اصطلاح به اراده و اختیار انسان باشه نیست اما مثال دومی که زدیم که اسم جوجیم اطلاق مقامی هم شد که در کلمات ادری از قدمای خود ما همثال شهیدستانی در همین شرلونه از اطلاق مقامی تحبیر به اطلاق کردن ظاهرن لفظی گرفتن مثل همون مثالی که ارز کردن که اگر روایات دلالت کرد که آب چاپ پاک میشه با نزد اگر از اون آب دردینه کشیدن اطراف چاهم بیسته اونا هم پاک میشه تمسل کردن برای پاکی اونها به اطلاق گوذاشین وقتی روز asker توی لومه دیو هم هست asker اصولین متأخر ما اسم مرحوم شایینی و دیگران این رو تعبیر کردن به اطلاق مقامی یعنی بحث لفظی نیست این مثل اهل مل که شامل فاسقای فاسق بشه نیست چون در مقام بیان و عادتا اگر اون آب ریخته باشه باز نجس بشه شارع نگفت باشه این رو ما یک نوع به اصطلاح استطان گرفتیم در بحثه گذاشت و سر این اصطلاح این واقعا معلول لحظی است یا نه انصافا ابحام داره خیلی هم بیشتر که کسی بودن خالی اصطلاح ابحام نیست یعنی انصافا اگر بخوایم این رو دلیل قرار بزنیم برای یک خاک بودن اطلاف چه؟ خیلی روشن نیست اصلا شاده برای شما سرک و باشه به میشه میشه کرد. یعنی شما عکس مثلا بگیم آب چاق نجس نمیشه اصلا این مقدار نه برای استردار ارفیه اینکه ایسان بدش نزل. مثلا طلاق مردهی یا گنجش که تو آب افتاده این برای قصارت ارفیه شاهدش اینی که آب نجس نمیشه چون در روایات نمیده که لبه چاق آب بکست این برد شده چون مدلول لحظی نیست، دیگر ضرونی. تا حالا میگفتیم آب چاه پاک میشه به تبع این عذابش هم پاک میشه. اینقدر این مدلول خفیه که گاهی میشه فرقه ها به همین تساؤف بکنن بگیم اصلا خدا آب چاه نجس نشده نه اینکه به اطلاق مقام بگیم عذاب چاه هم پاک میشه. به قرینه این که اگر واقعا نجس بود امام هم. باید می توانیم خب اطراف شام آب بگیرش چون آسم آب می کشیم به آب می خورد. همین دقیقا سرمه هم. چون مدلول لفظی نیست دو طرف میشه ازش ازش استظهار کرد یکی این کی اون آب نجسته لیکن اطراف شام خاکه یکی به عکس چون اطراف شام دقیقا نمیده اون آب هم خاکه دقیقا سرمه تو خود عصیره نبیر و تو آب شیرین نبی میگه وقتی آتی جوشید نجس می شه خب دیگه هم طبیعتاً باید نجس بشه وقتی زاهاب صله شد امام نفرمود دیگه آب بکش پس دیگ به طبع باشه اینطور نیست این رو میشه عکسش هم کرد از اینکه امام نفرمود دیگه آب بکش پس نجس نیست برای حرمت شرب داره خوشا نشو سیم خب عکس یعنی اگر انسان دقیق بگه چون مغلول لفظی نیست از کنه همیشه محدودیت داره اما مدول غیر لفظی مثل سیاقی و غیر سیاقی یا واقع یا تلازم واقع اون محدودیت نداره حد واضح نداره مثل مدول لفظی نیست یعنی شما توانید عکس بکنید بگید روشن شد میتوانید بگید از این که نفرموندن دور دیگر آبدکش معلوم میشه اصیره اندری اصلا نجس نیست, نیست نه اینکه به اطلاق بگیم پاک شده و لذا انصاف قضیه اگر ما این رو هم قبول بکنیم حق با متأخرین و علمای شیعه است که نوع مدلول سیاقیت و این اطلاق ولو اطلاق لحظی نیست لیکن مثل اطلاق تفصیقی به تعبیر ما یا اطلاق لحاظی این با توش مقدمات حکمت جاری بشه چون ما این توضیح روح کردیم ما چند جور اطلاق داریم یک اطلاق قد ادمالقید کافیه توضیح دادم اخیرم یک اطلاق لحاظ میخواد ادمالقید کافی نیست ادمالقید مثلا همین که بگیم شاره نگفت لب چهاره آب, آب بکش، این کافی نیست باید احراز بکنیم مقام بیان و قصات دیگر رو. اون وقت هم از به اطلاق بکنیم پس این قسم تنجم هم انصافن این که مدلول لحظی بشه مشکله البته ما ممکن است با سیاق حجیت درست بکنیم اما ظهور عرفی و ظهور لغوی و ظهور لحظی و ظهور وضعی نمیتونیم در اون درست کنیم قسم که این خب خیلی ابتلاع داره و در کلمات اصحاب ما نیامده استراحیست که بنده بودشم جرد فقی گاهی میشه یک روایت میاد در روایات ما اگر به لحاظ متن لحظی شراح کنیم یک جور میفهمیم اگر زمیمه بکنیم کنیم به جبه فقهی جوری دیگه میفهمیم این سوال اینه آیا این جبه فقهی تا چه حدی اثر داره؟ الان ارزو مثلا چند تا مثال ارزو کنم تا روشن بشه خدمت های یه است در فروختن شراب خب معروف بین علمای اسلام بلکه اجماعی که فروش شراب جایز نیست. سمن خرم سخت لیکن خب از اون برم مسیحی ها شراب رو می چون توی احد زمین بود الان تو جمهوریستان خب بخرم بفروشن بین خودشون مانه ای این بحث بود مثلا فرسن نهالی کردم ابو هنیفه می گفت شما شراب رو اگه بفروشین باسه لهم شراب بذیم به یک مسیحی بفروش پولی لیکن خب هم در فقه ما و هم مشهور بیگ علمه این هم باطله یعنی شما شراب رو یک مسیحی به فروش پولی که به شما بده اون هم باطله که توزیر چه بله یه فرعی بود این در مدینه بود که مالک مزرح کرده بود و اون این بود که اگر شما شراب پولی مدیون هستین به یک نفر به اصلا مسیحی په شما مدیونه یعنی زمش به شما مشغوله. بعض مثلا شما ازش 200 هزار من طلب دارید از یک نفر مسیحی. جلو شما دیدی شراب رو حدود 200 هزار من گرفت برای قرض شما به شما به شما داد. ماله گفتی اینجا درسته. کاتاکوفس. یک مسیحی اهل کتاب مدیون به شماست. برای ابراع ذمه جلو شما شراب فروخت پول ش... پول شراب رو به شما داد برای ابراء ذمه اینجا گفتن اشکال نداره مالک فته دلیلشم ارز کردم سابقا میگه چون پیغمبر از اهل ذمه جزیه میگرفت و اینا پولی که به عنوان جزیه میدادن باید پول شرابم بود پس اگر ضمهش مشغول باشه البته در جذبیه زلمش به دولت مشغوله در این مثال زلمش به شما مشغوله روشنش تو سرمسته میگه چون پیغمبر ابراع ظلم کردن با پول شراب پس میشه با پول شراب ابراع ظلم کرد قیبش دیگه جهاز نیست اونی که پیغمبر انجام دادن روشنش تو ما حدود پنشیش رو باید داریم که شاید همه شما معظمش هم سریم. همین مسئله توش آماده خیلی هم عجیب و تحریب مسئله واحد اینقدر از روایت بیاس شده از خواب تحجب کرده در تمام اونها ان رجلن یک رجلی به کسی دیگه مدیون بود شراب رو فرور عده ازین کرده ما مفرمان اشتار نزده توی یک دان از اونها خیلی به اهل ذمت نشده یک دان تو تمام اونها ان رجلنه. لذا اصحاب ما گیر کنم متحیص کنیم چه رو عملا؟ چون معناش اینه که اگر یه شیعه جلو شما شراب فرو ذمه شما رو پرگاه، میگیم درسته. اون قسم گیر از اصحاب در این جاست. ما باشیم و زاهد روایات اطلاع داره. و اصحاب متهیر، حتی بعضی‌شون گفتن فتوا میدیم تعبدن به این مورد. روزیف. من دیگه سعی نه. چون جلب فریضه خصوص اهل کتاب بوده. پس اطلاق مراد نیست ان رجلن یعنی رجلن به اهل پس دیگه با مشکل برکر نگردیم اونی که, اص... که اصلاق هم ده. نه جذب فقیست مرامی نیست چون ما فهمیدیم جذب فقی فهمید این بوده این احتمال نبوده که یک مسلمان شراب به سوش اداعظم بکنه. بگرد میکنیم این اصلا در بین حامه قطعاً واصل بوده چون برای مسلمان قطعاً جایز نبوده شراب نوشیدن دقت کنید چی می پس بگم تسول و نحس ما مطلقه اصلا پنج شش شورا هم مطلقه اینا از عجایب اینا واقعا منم متعیرم انصافا این لولا این قرینه اینم ارزش کردم ما گشتیم تا آخر تو مدعنت الکبریه مالک پیدا ما کردیم لولا توی فتاوی موکلین هام نبود توی مدعنت الکبریه مالک این خطو این این خطو اومد لیکن به عنوان اهل کتاب تازه استدلالش هم نگشته چون پیغمبر جزیه میگیره و اونها از پول شراب میداده پس ادار زنبه با پول شرابش کننده طبعا برای چی در اهل کتاب اما روایات ما مطلقه در روایات ما مطلق وارد شده این همون نقطه ایست که ما میگیم مراد جدی ان رجلن یعنی رجلن به نهر کتاب این ایک بحثه که آیا با وجود جب فقیر میتونیم تقیق بزنیم یعنی مراد جدی رو با مراد استعمالی فرق بگذاریم این یک مثال که اینشالا واضح بود از کردن مسئله بسیار معروفی از در که اصلا زنها خانومها بعد از نقاع از و قبل الاختصال یه جوز و وقتی املا تو این مسئله اصلا در جبر فقهی خود خب در جبر فقهی یا عامه اصلا روایت ندارن رسول الله اصولا اصلا اصلا ای که در قرآن کریم آمده به اصطلاح در باب قس، قسل زن که مداری غسل زن به خاطر نمازه زن بعد از حیز به خاطر نماز غسل میکنه این غسل زن به خاطر نماز اصولاً در سنته مثلا زکات هم اصولاً مسائل اینکه زن نماز نخونه یا روز نگیره اینها کلا تو سنت آمده تو آیات کتابی فقط مربوط به مسئله به حساب مباشرت است. مسئله غسل در سنت پیغمبر فرمود اضاعق بلسل حیزه ببینید حیزه رو به فتح حاق بکنه حیزه نکنید حیزه پارچه‌ای هونجه... بوده که زن در اگام حیز با خودش برمیده سلطن به چیز حیزه خود اون حالتی که پیدا میشه فدع صلاح و اضاعد برد فقصد سلی و سلوی اما در قرآن قسله حیز قسله حیز تو قرآن نیامده برای نماز بله نماز میگونه در قرآن فیدات تحرمه آمده فهتت زلال نسای فالمهید حتی یتورمه یا حتی یتحرمه بعدم فیدات تحرمه عمل کنند. بس این بوده که این تحرمه به معنای نقاعه یا لاقل معنای شستن موزعه یا لا به معنای اختصاله چون اختصال در قرآن نیامده این ترک مسئله روایت هم اهل سنت ندارد رو اون وقت فقه های عهد سنت تو این مسئله اختلاف کردن منشه اختلاف در جبب فکری این بوده که آیا استطحاب در شبه ها جاری میشه یا نمیشه چون من توضیح این چه خدمتون چند بار عرض کردم یکی از مواردی که قطعا در شریعت مقدس استطحاب آمده در مسئله وضوست قرون نو اهل سنت و مصیغه بر دار ما هم داریم در این جر مشترکی که اگر کسی وضو داشت شک کرد آیا مثلا حدثی از او سازده نشد یا نه بنا بر یقین بگذاره این در باب وضو روشن شد بعد از احده ثائله سا... از زمان اهل صحابه به بعد بر... تا خیلی که روشنم بحثی که مطرح شد استصحاب در شکوات حکمیه خوب دقت بفرمایید استثاب در شبهات حکمیه یعنی در حکم کلی اگر شک کرده مثل همینجا مثل اون مثال دیگه آبی بوده بیشتر از کر بوده نجس بوده پونچو شیخیم قرمس شده اون نجس. دو روز موند این رنگ تغییر شد سفید آیا پاکی آدم زال از تقریه رو منقلال نفسه گفته شده ادابل اقل ما قدر کرده یا مثلا اختصار میکنه پاک از اونورا استثاب اختصار میکنه نجاست چون قبلا که نجاسته طول نمیدیشه روایت هم نمیگه پس این دقت بکنید ما بحثی در اصول مطرح شد تدریجاً دیگه رسوم شد در اصول استصحاب و چون خیلی میشه انشالله در بحث اصحابم از هستن بعد از ان انشالله خیره گفت این دست مطرح شد که آیا استثاب رو ممکنه حکم رو با استصحاب ثابت بکنیم یا نه خب عده از احلسانت گفتن بله میشه عده از احلسانت گفتن نمیشه قدمای از ما هم عده کمی گفتن میشه اما ها تدریجن از زمان علامه رو هست عده زیادتری گفتن میشه تا اخباری ها اخباری های چیه به شدت کسی نمیشه احساساب در جوابیه نمیشه چند بار در مجلس عرض کردم یکی از نقاط اساسی اختلاف اخباری ها با اصولی ها استصال در شما تحکمی هست کلیه اخباری ها اصرار که نمیشه. بعد از باز اون دعویی که مطرح شده مرموم وگید و بهباهانی و, و دیگران باز اصولی ها حتی شیخ انساری یا بسیار نایینی مرموم های نایینی و مرموم های آزی ها دیگران اینا مشهور قائش این که میشه استصال در شما ت جاری میشه این آه خویی ایشون ها میگن جاری مثل اخباری ها مثل تخریبشون با اخباری ها فرم کن نتیجه داره خب، میتونین در رسائل شیخ و بعد از شیخ نائینی دیگران ده پونزه سا روایت برای استثاب نبر کردن من چند دفعه از کردم. ما یک دانه روایت واحده هم در استثاب در شباط حکمی نداریم لذا بحث استثاب رو در اصول روی قاعده رفتن روی سیاق و اغلالی رفتن جلو تا اینجا روشن شد خب جلب فرقی هم روشن شد ما در روایات ما این بحث کبروی که یا استصحاب در صباحات رو حکمیه میشه نداریم و رذا گفتیم ادیه از اصولی این که میشه مثل من اون نایگه مثل که استثاب جاری میشه سوالی که اینجا اینه، ما در اون حکم جزئی روایت داریم چار پنج تا آز پنج شیست روایت همون هست اونم عرض کردم چند بار در همی جا از اجرایی میگه معارضم هم نداره مثلا بگه که زن بعد از نقا و قبل الاختصال لایجوز تمام روایت هم گه یکی در ها بعد نقا و قبل الاختصال نکته فندیش این و رو بخواییم اینجا از این روایت چند تا مطلب در میاریم؟ وقتی امام می فرماید بعد النها و قبل الاختصال یا جوز و ها فقط حکم فقهی در می این همین چیز که الان علماء ما فرمد درست من اینه که اگر جذب فقهی ملاحظه کنیم از این رواید دو تا مطلب در می نه یکی یکی مسئله فقهی یکی اینکه که در شبهات حکمه جاری نمیشه؟ شما که لا اخر خیلی وقت است شما موضوع رو تکرار کردین در اونجا اصلا عرض کردم تکرید استصحاب این نمیشه من در این بحثا چند دلیل میخوام که تکرار میخوام رو تکرار نشه مو... اصلا باقای موضوع در اصطلاح اهل سنت مرادشون این بود مراد این بود که این زن دارای دو حالته پس موضوع خود زنه دو حالت داره در یک حالت حکم داره در یک حالت حکمش نای آمده میگن چون موضوع واحده اونی که جمع میکنه خود زنه حکم اون حالتی که آمده به اون حالتی که نامده سریع و لذا از کن شدارن مرارن استثاب یک معنای خیلی شبیه قیاسه نه که به یک معنی خیلی بیشه خود بیارتو به یک معنی کالا جای جنگی نیستان دیگر و لذا از کن در کتب اهل سنت و حتی در مثل معاله کتب شیعه یمان مثل به علامه فل استصحاب و قیاس استثاب و با هم میگرم در استثاب مرادشون از بقای موضوع همینه. این توضیحاتش از کنم اگر هم میگه خیلی از بحث کاریز میشن و همون توضیحات سابق استثاب تو. پس اینا اینطور میگفتن اگر حکم آمد که زن ها لای جوز و بست بل حقه ازن فعتزل و نسائف محیز اعتضال خورده به زن این زن نمیدونیم با صفت محیز بودن در حال مهیزی یه و یا خود زن یعنی به اعبار از این اخرانی میدونیم حیثیت یا حیثیت تقییدیست ب حیزییت تمید و تع میشه روشن بشه. هر جا اثر ر رو میص و حیثیت این میشه تریدی. هر جا اثر رفت رو میث میشه تعلیمی یعنی اون سع تذی ا فرتز رفت روی زن بابت حیث میشه تدی حیثیت تریی. اگر حیثیت تمیدی شد، به قول که فرقی شد مرادش اینه اگر حیثیت تعلیلی شد الان که خون پاک شده زن بابت حیض نیست اما اگر رفتو زن مهیز و حیض علت بروز این حکمه رخصت ذات زن رو دقیقاً بکنید ساعت زلنسا اون مهیز علت کیض حیث نیست حیثیت تعلیلی است ندیه فا... ها همین میگه اگر علت اونجا شک دارین نباشه حیثیت رو تقییدی بزینید نه شما این طور نفرمه. شما هم راهی بطونن همیشه ارز کردن شما بگید قرف در احکام شرعی حیثیت رو تقییدی میپرمید خیلی خوب سلام ما ارز کردیم در احکام عقلی حیثیت تعلیلی این دوابت کلی رو هست کنید در احکام عقلی حیثیت تعلیلی در احکام شرعی حیثیت تق پایدش نه در قوانی حیثیت تقییبیه این در حقیقت اونا بخواستن چی بگن؟ این بگن ما نمیدانیم حیثیت حیث هیس تقییبیست یا تعلیبی اگر حیثیت تقییبی باشه اینجور میشه زن با وسط حیث یهران ها اگر حیثیت تعلیبی باشه اینطور میشه خود زن یهران ها هی سبب و عروض این حکمه ما که تا که تا وقتی که یقین پیدا بکنیم به که یقین با استثار تصویر روشن شد پس در حقیقت البته آیه هاشک مخوانی کنیم هیستیت تقییبیش بله اگه هیستیت تقییبیش روی استثار روشن شد سر استثار چیه؟ سر و اینه که ما نمیدونیم ببین ای مبارکه من خیلی بلندم واده. فعتر زلو ای عسل، آن نسا این موضوع، فل این حیثیت فعتر زلو نسائ فل این فل حیثیت هیئت یا تعلیمی. حیثیت تقریبی یعنی چی؟ یعنی هیئت و متأهیس هر دو موضوع خوبه. این اسم حیثیت تغییبی یعنی انسا و محیز موضوع حکم. حیثیت تغییبی تغییبی یعنی چی؟ یعنی متحیص موضوع حکم حیثیت فقط علت اروز شد دیگه موضوع نیست موضوع ذات زنه بگذب کنید ذات این خب شما دیگه اون استظهار شما شما چرا مثل های واقعی بردی برمایی اون استظهار شما, شما من قبول دارم منم قبل نه این تو خود به ذات زن مثلا این مثال در همون مثالی که سابقا تو بحث مشتر ما زادی. در روایت داره که بنت و زوجه این حرام ربیده درست لازم دیگه بناسه لابع ابو سوال اینه انسان زن رو گرفت این زن بچه نداشت بعد طلاقش داد این زن شوهر دیگری پیدا کرد از اون شوهر دختری برش آمد آیا اون دختر بر من حرام یانه بر شوهر اول حرام یانه این دختره اگر عنوان بنت زوجه الان زوجه نیست اون وقتی که زوجه بود بنت نداشت الان که بنت داره زوجه نیست نمیدونم دخلت میکنه آیا این زن برای دختر بر این شوهر اول حرام میانه اون نقطه فرمیش اینجاست اون نقطه فرمیش وقتی میگیم بنت تو زوجیه، دکاتو آیا مراد زن با وصف زوجیت؟ نه داخلشون و تا اینجا. بله نه داخلشون نه توی این کل. رابا که, که داخلشون نه. به اینجا، در بین رب... زوجه زوجی رابا، دکاتو کنی، دکاتو اون بعضی اون نیست دکاتو کنی چی میخوام بکنم؟ الان این زن زوجه که نیست شده شوار اول آیا به این تو زوجه این سل رو میکنی نقطه فرمی. اون زوجیت حیثیت تقییدیست یا حیثیت تعلیلی یعنی اگر گفت زن با وست زوجیت دختر او خب اینجا دختر او هست اما با وست زوجیت نیست اما اگر گفتید نه مراد از خود اینه هر زنی که زوجه شد دیگه ذات زن کار نداریم به بحث زوجیت میاد رو ذات زن از ذات این زن اگر دختری متبلد شد این هم حرامه نمیخواد وحث زوجیت باشه به قسم کنید ما دومباره وحث زوجیت نیستیم وقتی یک زنی زوجه انسان شد در اینجا دختر اینه. نه به لحاظ ورثه زوجیت، به لحاظ ذات خود زن. از چرا؟ نسل مسئله زوجیت الان دیگه چیزی نمونده که. زن که است. ذات زن، او خودش نمیگه که زوجه. نه باشه زوجی یا نه. زوجی خب، زوجی شد، نه، زوجی که شد، شاره آمده اجزلی که زوجی شده، نسل او رو بر این حرام کرده. می‌صاره اونم به بگیم علایق اما هیچوک نیست که بحث دوپل هارون تو بنشه نازانیماتولوژی یا اون بحث دیگه‌ری مثلا زوجیات در نیست الان دیگه زوجی که نیست که بابا این هارون هم می کنه بابا نه تو ببینید نساخت مولانا تو و این تو بازم به با عنوان زوجه هست خود دخولی که به زوجه باشه آنها فرصیم به یک در دخول اشتباهی شبهتن گرد میکنی اون نیست که باز زوجی باشیم خود این حرام زوجه نیست تصادفان همین مطلب روایت هم داره که تحرام برد تو تحرام همین <تصالحان> مطلبی که به جمان گفتن خود این روایت داره راز و سریعه هم درست هم از تصویم برم این و نه در همون زنی که بعد شوهر میسونه دختر از شوهر از بعدی بذاره. البته ارف کردم من این روایت شما ما باید هرگز بر حیثیت تعلیمیه تعبدند و الا اصل اولی در احکام شرعی حیثیت تغلیبیه پس استصحاب روشن شد نکته استصحاب این سوال اون جو حالا نکته فنی اونی که بس من بحث من وارد بحث استصحاب رو نمیخواب بشم نکته اینه وقتی امام صادق که در قرن دومه و این بحث بین فوقها شده او دقیق بکنی یک فقیر میگه یه روم و بسیه ها چون استثاب میکنه یک فقیر میگه لا یه روم و بسیه ها چون استثاب جاری نمیشه برمیگریم به اساط البراه چون استثاب جاری نمیشه این جای بحث نیست جای بحثش اینه وقتی امام صادق میفرماید یه دوز و وقتی ها دو تا مطلب رو برمی‌کنه یا یکی اصحاب ما فعلاً یکی گل و پرفی من می‌خوام بگم جردتتی موجب انعقاد ظهور میشه یعنی حتی مدل لحظی درست می‌کنه نه مدل سیاقی این دو نه فقط مثل اطلاق مدل سیاقی باشه مدلول لحظی درست میکنه که امام خواهد بخواهد استثحاب و جد نیست از کل از اصلا در رساله کفایه اگه ذهنتون باشه از سکت این در بحث استثحاب نمونده چرا شما دیش مدلول فقی فهم آیا جمع مواردی هم هست که من نگه بخوابی هم طول می کشه. این مورد خیلی مثال واضح و روشنی رو عرض در اون آیا جبه فقهی تأثیر داره برای تهم مراد به نظر بنده بلکه یعنی به اوار از این اخرا اگر ما در بند درگم بودیم تو کوفه بودی، یا تو مدینه به ما می گفتن امام صادق فرمود یکی و دو ها یعنی فرض یک فریح سنی در کوفه می گفتن یا در مدینه یا در شام اون فقيه اینجور میفهمند که امام صادق قائل از استصحاب در شواهد حکمی جاری نمیشه مثلا کلام معناش این بود الان فقهای ما این معنا رو نفهمیدن فقط حکم شرعی رو بحث اصلا مثلا این کلام اینه که استصحاب در شواهد حکمی جاری نمیشه با یک کلام دو تا حکم در میاد یکی حکم فقهی یکی حکم اصولی اولا استظهار میکنیم معنا معنی رو آیا این جزو مدلول لحظی یا جزو مدلول سیاقیه به ذهن ما میاد که اینها جزو مدلول لحظی باشه و حجت هم باشه شکل به شکل استفتحان به شکل استفتحان نه غیر از استفتحان نیشه نقطه چیه نکته یکی مدلول لحظی قرار شدیم نقطه اینه که همیشه به قوله آیون علت و معلول اینه هم دیگه هستن دلیل و مدلول هم همینطوره یعنی این اصولاً یک یکی ارتکاز است که فقیه وقتی میخواد فتوا بده اون دلیل همیشه مدنظرشه. نظرشه مثلا میخواد فتوا بده قاعده علالیت دا قبول داره تنخوه اون قاعده یه چیز میگه قاعده علالیت قبول نداره چیز دیگه میگه دقت کردید این طور نیست که دلیل رو به نحوه استبتان بگیریم اصلا دلیل محت نظره وقتی یک سوال رو از شما می کنن شما در ذهب رضا که استثاب حجتی یک نتیجه می در ذهب رضا استثاب حجت نیست نظرشون رو که استثاب نتیجه دیگه می گیریم من اینه که این از قبیل استثاب برای هم جداش کردن که این از قبیل استبتان نیست این از قبیل این پفارت به خود یعنی تغییر وقتی یک فتبایی رو میده مثلا میدونه در این مسئله اده از علمان بین رو با کردن اده از به برواس پلان تمسا کردن این مطلب شعن فقیه آشنا آشنات ولذا این کلام رو وقتی به فقیه میدن تا میگن امام صادق این فرموندن یا جور در وقتی میگه میگن اجبت از امام صادق هم استصاب و جدی میدونن این چه ضراره شما مثال که به اما که ممکن ببینید در حد امکان این امکان داره نمیخوام بگم امکان نداره لیکن عادتا ایمه علیه این اینجور جا که اهل سنت یه چیز میگن ایشون خلاف اونها رو میگن سابق رسول رسوله قالباً بیان میکنن قالباً بیان میکنن, بیان میکنن. بیان میکن. بیان میکن. یعنی مثلا میگن فقط جا ان رسوله و هاوله لمیان ضرور الله کرم رسوله لمیان مثلا هم از آق سنت رسول الله پیغمبر فرمودی از جزوی ها اینا شد در زمان امام ساده اده از اهل سنت میکنسن ها از دین و دلیل هم منحصرا استصحاب دقت دلیل هم منحصرا استصحاب روشش تایگذاری مسئله اگر امام صادق ساده... این احتمال داره که امام صادق اینو به خود گشن استصحاب برشه این مطلب اهل صدقه مطلب دونم طبق اهل واسه یا از امیرالمومنین ائمه عادتا اون رو بیان میکنن عادتا اینطوره وقتی بیان نشد عادت این بیمه ناقصه هم در فقه اعتماد شده پس بنابراین این مسئله جذب فقه خیلی کاربرد داره من دو تا مثال دادم اما کاربردش تو فقه ما زیاده جایی روایت مطلقه باید مقید بفهمید جایی روایت مقیده باید مطلق بفهمید جایی روایت یک مطلب داره ما الان در باب صلات در حریر دقت بکنید صلاه در حریر در لباس حریر پوشیدن لباس حریر اهل سنت این مثاله میزنن چون وقتشون چرا تمام بکنم اهل سنت این مساله دارن هیچ روایت از رسول الله ندارن صلاه در حریر و بردن رو مسئله شما نه. اگر کسی قائل به شما بود میگفت نماز درست کسی قائل به اعتناء بود میگفت نماز باطله مثلا صلاه در حریر نیطوری نه اهل سنت جزم فردی تو روایات اوائل ما هم ما نداریم لوح صحریه فی لای ذلول صلاحی سلاطین ما تو روایات امام رضا که در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم اونجا داری لا تو بر حدی هر اینه که اگر در این زمان آمد یک جربه فقهی شد خوب دقت میکنید پس امام رضا اضافه بر اینکه میفرمایند نماز در هر جایز نیست میخوان بفرماید ما قائل به امتناع هستیم اجتماع اما نهیم جایز نیست دو تا مخلق بسنی توی چی یک مخلق از الان فقاه ما یک مخلق داره نماز در حقی باطل ما میگه وقتی کلام رسید دیگه یک حقق و اصول و همه جا جا شده وقتی کلام رسی به مثل امام رضافه اون لاز و سلده فلحری این اشاره اون قاعده و اصولی هم هست نه اشاره به نظر ما اصلا مضبوله شه یعنی که در بحث اجتماعان نه هیچ شد از اصولی ما به رو این روایه تمسخ نکردیم شبایتون راحت باشیم ما به این تمسک کردیم و لذا از این به باید امتناع در میاد من از کنم در محله خودش انصافاً طبق طباعدی که ما داریم حد با اجتماعیونه که کسا جمالی به اجتماع اما با در نظر گرفتن عجیبا روایات احلیبه انصافن انصاف این اختلافی سیما که ما داریم که آیا از این روایت دو تا در میاد یا یکی؟ یک. اگر دو تا درآمد مخدول لغزیر یا سیاق حجیت داره یا نه؟ به نظر ما داره. هم مخدول لغز چون این غیر از استثنا و غیر از واقعیتو. چرا؟ چون این قاعده فقهی یعنی اون حکم عبارات اوخرا از همون دلیل اصلا ثغیب بدون دلیل حکم نمی‌کنه. تا یک خیلی نماز در حریف صحیحه یعنی است. تا نماز در حریف باطله می امتناییم احتمال این که از پیغمبر روایت بوده به ما نرسیده به آمه نرسیده امام زافر ندارشن هست اما لسان روایت این نیست قاعدتا در دام امام بابن بابنیمان ما وقتی جب به مثل نگاه میکنیم لاز و سنده فرحری ازش دو سا در میاریم هم نماز در حریب باطله و هم امتناع درسته در بحث اجتماع نه در بحث اصولی این از مسئله مصدل است بوش بکنید این شیعی کار داره نگاه به سادهی شکنید آیا جبه فکری در تحن روایات مؤثره یا نه و الان تقدیر تاثیر به حد زهور میرسه یا نه و جز مضمول لغزیس یا مضمول سیاقی به حد ظهور میرسی یا نه به حد حجیت میرسی یا نه به ذهن ما در تمام موارد بله البته با جمعه مسئله دقیقا در رسید